شما سهم زینب کبرا را از عصر آشورا به بعد ندانید خیال نکنیم که زینب کبرا فقط حامل بار اسارت است این در تلیعه سفر با سالار شهیدان بود و قضایه را مرتب پیگیری می و میفرمود نه یا مأهو و نموت و مأهو یعنی ما اصلا رفتیم و می رویم که همه خطر را تحمل کنیم با تقسیم کار برای استقرار عدل از همون میدانی که دیگری فاصله بین مکه و کربلا را طی کرده بود به سالار شهیدان گزارش بدهد که کل میانه آشوب شما تا میتوانید برگردید به مدینه و ساکت باشید و وجود مبارک ابی عبدالله اعتراض کرد فرمود ممکن نیست بعد اون گزارش دهنده گفت پس و چرا بجازه بدید به مدینه برسانن اینجا زینب کبرا فرمود موادا نبوت و مأهو و نهیا مأهو همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن طالب بود گاهی مانند حسین ابن علی سخن میگفت گفت گاهی مانند علی ابن طالب وجود اون بارک علی ابن طالب در نامی که برای معاویه نوشت معاویه چون در نامه برای حضرت امین نوشت کی مهاجر بود که انصار بود مهاجر کیانن انصار کیانن علی ابن عبی طارب علیه در جواب نامه مرغو فرمود مال طلقا و ابناء و طلقا و تمییز بین المهاجر و الانصار فرمود ای معاویه شما بردگان ما بودیم. ما شما را آزاد کردیم. مگر یادتون از تو و پدرت اسیر سیف ما بودیم. ما وقتی مسلحانه وارد مکه شدیم همه شما مثل بید می و همه شما رفتید خانه پدرتون ابو سفیان به پیغمبر فرمود اینا را آزاد کنید. اینها برده های که ما آزاد کردیم. شما اسرای جنگی بودید. ما همه شما را اسیر کردیم در فتح مکه شما آزاد شده مایید شما تلیقی تلیق یعنی آزاد شده تو خود تلیقی پسر تلیقی پسر تو هم پسر تلیق است مال طلقا و ابناء طلقا شما برده های جنگی بودید شما که با ما مصالحه نکردید شما تا آخرین لحظه شمشیر را از رو بستید ما فاتحانه وارد مکه شدیم همه شما را اسیر کردیم رهبر ما فرمود این بردگان را آزاد کنید ما هم آزادتون کردیم شما حق ندارید دربارهٔ مهاجر و انصار سخن بگویید این نامه علی سلام عله تو البلاغه دختر علی در کنار سر متهر سالار شهیدان در شام به پسر معاویه فرمود عماد العدل ابن ای پسر آزاد شده این عدالت است که بچه های پیغمبر رو از شهرها عبور دادی به چای خودت را در حرب نشوندی میبینید زینب مثل علی حرف میزند این چنین نیست سخن از اسارت باشه فرمود یزید شماها را ما ها آزاد کردیم پدرت را ما آزاد کردیم جدت را ما آزاد کردیم در عدل یبنت طلقا تخدیر رو که هر این است مقام شامخ زینب کبره